قرآن روح جان عالم بر احمد آمد قرآن گفتار رحمان از فرخاتم آمد نازل شد بر مصطفیان روح و جانم سید الکونین احمد فخر دو آلم سید الکونین احمد فخر دو آلم قرآن روح جان عالم بر احمد آمد قرآن گفتار رحمان است بر خاتم آمد نازل شد بر مستفاد آروه جانم سیه دولتونی احمد فخر دعااله سیه احمد فخر دعااله لفظش زیبا قرآن از فرموده با قرآن است آنها قرآن است اله حق درمان از لغزش دیبا قرآن است بر مهد با قرآن از اله حق درمان از اله حق درمان است اله حق قرآن درمان است قرآن کتاب بی مسال قرآن جا سیغل بارا می دهد سیغل قرآن و می دلها را و دلها روشن می شود با رحمان و دلها روشن می شود با رحمان و بدین قرآن و جان بر احمد آمد قرآن گفتار رحمان است در خاتم آمد نازم شد بر مصطفی آن روح جانا سید الکون این احمد فخر دو آلان قرآن الهر دل رو با جان را سفا آرام جانم قرآن روح روا نم قرآن, قرآن الهر دل رو با را جان را آرام روح و روانم قرآن آیات قرآن قرآنی هر یک نسخی کامل تأثیر شان باشد پیدا بر جان و بر دل حافظ قرآن از زمان. باشد شادمان، من با چون نور می در دیوان با قرآن چون نور می در دیوان قرآن روح و جان عالم بر احمد آمد قرآن گفت دار رحمان از خاتم آمد نازل شد بر مصطفیان روح و جانم سید احمد فخر دو عالم سید دول کنه احمد فخر دلال خوش آمدی ایاران خادم ای نے ای قرآن سلام و بار بر برشما عاشقانه مستف خوش آمدی ایاران ای خادم نے ای قرآن سلام و بار بر برشما عاشقانه مستف عاشقان آشیگانه مستف آشیگانه مستف تکفیر